من اشهدا ان لا اله الا الله و در. برای حرمت که حرف یه کردن ایش مسئله تشبهه به کفار و به افراد فرات ایران که من جمعه بسند ریش میتارشن من این بروایتی که نهب شده به لحاظت سند منخصرن پیش ما پیدن اونجای که ما داریم از طریق سکونی رسیده تونجای که من دیانه شد تحریق کاملی چون که جاملان حالیسان روز ظاهرن تو جنفر یا تو تک داره بسلام و مثلش یکیش ولی تصل کن مساله که ارداری و تو شاکلی مشاکل ارداری مثل مشاکل اردارشی اون مثلش یک مجداری ببینطر بیشتراشی میکنه یکیش دباسه یکیش قضاست یکیش هم ظاهر شکلی آنی به ظاهر شکله به بیشتراشی شکل. میکنه این راجع به اون روانه توضیح هم شد که دیروز که آیا این مراد مطلق یا مقید یا نسبیه یعنی باید دیگه ثابت یا متقید که آن این روزه می توضیح اساسی روایت تو خب بلاز و مشکل و وضعه اوشنه در شنوات سخونی هم در مخصد باقرارمودنی و واقع نظر هم از این مشکلی سندیش اصولا در رواییاتی که این دسته من قاضی کلی رو ارضو کنم دیگه که های دیگن به دربه شما میکن روایاتی که از این سن روایاته از این دست روایاته این ها کلی دو دور میشین رو یک معلومه مثل شبیه آیی مبارکه پلی و رجعان نه خربالله به توضیح دادیم این ها دو دور میشه معلومه به کلی این درست قبط حدیث حیبی برای شما نافه یک معلومه باشه که عنوان اعدای عنوان باشه. یک عنوان محردی باشه, و و باشه. عنوان دباس یا قضایی شیف به عنوان متقریبی باشه یک عنوان متقریبی باشه و مفاد حدیث تو این حساب حالت تشریف پیدا میکنه یعنی حدیث مشبرک میشه استلاحا حدیث رو مشبر میدونه اینه که اعدای یعنی مسیحی ها اعدای یعنی یهود یعنی بودایی ها یعنی زردشتی ها این میشه ثابت اعدام کسانی که از بین اسلام خواهد وقتی نباس و قضا و تعام میشه متغیر، متغیر به این معنی که از یک زمان به زمان از یک فرحن به فرحن اینو عوض میشن فهم بکنم وقت از حلیث مبارک اینجور استظهار بکنه هر زمانی هر چیزی که عنوان نسبت اونها پیدا کرد اضافه اونها پیدا کرد اون حرام میشه یعنی به عبارت نخرا این حدیث مشرق میشه شبیه این هم اخیران تو بحث اصولی مطرح شدید رو توی این فکریه توی بحث رسولی بسی ماغع آقا مسلمان حسنان و آقا امدالله حسنان این ماغع آقا مسلمان حسنان و آقا امدالله حسنان این طوریه نهاشه اگر قبول بکنید این کلام هم امدالایم مهدول به حدیث میشه در اینجا این طور میشه در بحث رس این حدیث بنابر کسی که قادر بشه مشرح میشه نه یعنی در هر زمان هر چیزی که مسلمانان حسن و و جاری و ساری و نافذ شد پیشه اونها اون هم درست و مثلا فرض کنیم وامضا ایران رحم رهنمون خدا هم مطابق هستن رهنمون خدا هر در هر در هر بی واسه اگه این با رهنمون هم اجی مثلا تو عراق نیست اون چه در عربی نیست اون ایران جایی متعارف شده خب این سرگفتی شاید ترکیبایی اول چیه عثمانی ها بود کلمه سرگفتی مانو های عثمانی در ترکیه بود برگیم را افتاد ولی خیلی جا هم مطرح نبود مثلا خیلی حالا که در ایران مسلمان ها رهن انجام دادن و جاری شد بین مسلمان ها پژایی این ماره آن حسن هست حالا اگر برگرشت مثلا ناره اون حکر اول میشه مشرع میشه این محنه اینکه این, این حکر این عنوان مشرعه مراد از مشرعه بودن اینه اینی که بگید مشرعه یعنی میشه ایک عنوان نسمی پس این نظام بانکی حالا نظام بانکی ترانی در کل کشاره اسلامی حالا باید یک کشاره ای که مثلا سوشیلیسی یا کمونیسی دارن یه وقتی مثلا این قداشتنی دارن اونو در نظام بانکی بهشون معنی به نظام بانکی ترونی در کل دنیا ایسلام را افتاده. حالا بعضی معامل داشت غربی مشکل داره بعضیش کزای بگیم به این مسلمان حالا اگر آمد امور اول شود مسلمان را فرمان نظام بانکی داره سکن کسا توی نه نحن ربا نباشه این بانکای دیگون ربا تحسیل سکن بگیم من درسته ما و آقا مسلمان حسن هم را حوه ه کسانی که از اهل صنعت به کردن به قاعده استحسان مرادشون اینه. مثالی که سابق میزدن پول حمامیه. اون من شوهه داشت، گذشته میه حمام، یعنی اساسا حمام باشه، دربی که حمام باشه، رفتساز حمام. این حمام چه نبوده‌ای اداره از جای المان تصوب در آب این, باقا... برده بیان. این با قواعد شرعی جور در نمیاد. اینا هم به وادی جوش شدن. گفتم ما را اول حسن به الله حالا با زوالات شرعی جود در قصد هم نیست سر کلمه استحسان سنت هم پیدا کرد از همهشون نه از همه شون قبول کرد شد که در این های ها یک مقدار از روان چیزهای راه می افته اینش که راه افتاد اینا مثلا میشه درست سریع شبیه اونم تو همین حدیث بگیم پس مراد از یعنی کسانی که مثلا خلاف اسلام هن. این صابق یا مورد از لباس این متقریه مثلا یه وقتی آمد لباس مثلا مسیحی به خصوص، مثلا کتهای مخصوصی شد تو جورو جرام مثلا یه جور خاصی مثلا کتو شرواز بود یه جور خاصی یا مثلا شرواز بود که پاچه ها مثلا پاستی که اصلا خیلی مسیحی ها رو میگوشید امده قطعه محضای حدیث بود بگیم که ما بعد اگر کار اینجا رسید که مثلا این لباس این کدو خاص مسیحی ها شد بعد یه پوشیدن اون حرامه لا تلویس و ملابس ارداری معنای شید و خیلی زاده این که میکنه مشرق میشه اون لباس اگر لباس خاص مسیحی ها شد جایز میشه اما حالا که لباس خواست اونها شد جایز میشه حرام میشه یه معنی حدیث اصوله هست. این طور میشه یه معنای حدیث هم اینجور میشه بگیم. بگیم نه مراد از اعداوی یعنی کسانی که با پوشیدن لباس کار غیر الهی به خدا میشن مثلا قداغتی که میخواین مثلا قداغه‌ای که شما ماده شراب داره میگن میره اینطوری این ماده کولا که کوکا کولا میشه برای این هران با تو که مداری این شراب مثل یهسه تا هر میشه فکر میکن درستی وقتی این میبران بودن تو من از کلول توش نبود توشب یواده شراب نبود زن حالا اگر ق ک این طور شد من با مثال و مشیدن این پی و یا در بین مسیحی ها و بین دشمنان خدا با عنوان رمز شد زمانی که مرووان مجرری کوکیفسی رو به که به خاطر اینکه این شرکت در فرد بهایی بود حالا اون بهایی بودنش خودش از هر یکی وقت پنج راه رو میکنند من این پوچی از هر یک بسیه نوش آغام فیلسی یک قرار نشید برای اسرائیل کمک به اسرائیل خب این ببینید نوشیدنه این نوش آغام دیگه خیلی را نرمیسوند چرا بود برای قیل مستدرینی شرکت ایران هست بود. باقی اون اون میونه که مثلا میگه اول ایران اینه که چیزی میتونی بگی رو که چه چیزیه بخاطر اینکه این دقیقا پس این یه ای معنا بشه در ایمان رمزی شده هر کی کس خونه شده این کس باشه حالا مقریضین مثلا فاصله اصلاح تا و معل لا حل این تغییر ریاضی کردن روشن بشه اجار رو دیگه ثابت نگیرید اعدا هم متغیر میشه من عرض کردم که اصطلاح مطلقانسی رو ما تو فقه وصول می‌کاریم اینکه اعدا ثابت اونطوریانم تو ریاضیات مثلا شما یه دوی به اضافه دو متغیر با ج این همین نسبتا دیگه چه نمی‌گه اما وقتی الف به اضافه دو متغیر با جیم به اصطلاح عربی یا چیز دیگه به فارسی هسته الف به اضافه به متغیر با ج این متغیریه به عدد دو بگذاریم به جهه دو مثلا خنجی بگذاریم مطابعیز با جیم جی میشه بجای به جهه عدد به جهه مثلا میزه این استباه هم متغیر اگر اون نسبه تغییر پیدا بکنه متغیر میگم اگر عدد معیلی باشه ثابت میگم اگر شیدیم که مثلا در غرب آدم منطقه الانیزی یعنی منطقه عرب سویی به تحبیل به منطقه یادی شدن برای هم ونه فرق اشکالیش این بود که شما وقت نهال منطقه تدریس رو این منطقه تو ماده معینی، این میشه ثابت، مثل عالم مترایی و کل نظرایی هادت، ولع آلمه هادت. شما باید این جلو بین، علف مسابق با چین و هر چین مسابق با دال، تا سعی مساویس مسابق با دال، این جلو این منطقه رنجی، همون عوارض منطقه ریاضی، منطقه عرصوی رو به شکل منطقایی نه به ثابت. گزین شما به این شکلی می‌گری. هل ال آلم و متقیرد و کلو متقیرد حادث هل آلم و حادث این ثابته این با فکر نمی سازه. چون چرا؟ چون وقتی بخواهی شما نتیجی که بخوایی دنبال چی میزده؟ این دنبال ماهده درست هست یا نه؟ آلم متقیر هست یا نه؟ هر متقیر حادث هست یا نه؟ اما اگر شما بگید این فکر بکنه علیت مساویز با جیم به هر ده هم مساویز با جیم هر ده مساو حالا شما در همین حدیث هم شبیه اون کار رو میکنی انجام بدیم عدا رو ثابت میگیریم لباس رو متقییر بگیریم شما مثل عدا و لباس و هر رو متقییر بگیریم بگیریم مراد از عدا یعنی اون کسانی که با این لباس عدو شدن اون کسانی که با این قضا عدو شدن مثال شنید مثال کمسید ایران حالا پیپسی پیما برد یه از دست اون تل باهایی در آمد. تو ایران شده که کسی مثلا تو سر پرسی باشید این متضبط میتینگیم نداره پس این لا تأکیل و لا, لا تأکیل و و اعدادی این مراد اینه. و و ملابس اعدادی مراد با خود حدیث اینجا نمیشه. فرق شده خود حدیث دیگه مشورت نمیشه. حدیث کارش چی میشه؟ اون جایی که عهدآمد اون که صادق از بینه صادق نه از بین در اون تیپونش سری کردن سریل و کوتاه کردن سریل از وقت پیش حالا ادی از عهدآمدانیه یعنی ادی آمدند اندن سریل بودن با این سریل گذاشتنشون عقب شدن مزه هریش شد رو که عهدآمد لاهونی یا چی ایران واقعا مزه با سری گذاشتن مزه شدن خوب دقت میگه حالا که اینا با سویل بودشتن مذهلش هم خود رو این در نیادیم موشن شد پس این اثبات نمی کنه که اون مذهب به خاطر این که مال عدوه حرامه این دیگه مشکل نمیشه نقطه یک خنده رو موشن شد بخونه یه نقطه یک که در خیلی از احادیز کارگوشات یعنی که به نحوه ثابت بفهمی مطرق بفهمی یا به نحوه نسبی متقیم و اگر شد در جای این حدیث هم از میشه بشکر که ثابت بشه که اینها به خاطر این شکل جز اعدا شدن مثلا به خاطر این شکل جز مثلا به اینکه مخالفین اسلام شدن اون وقت در این صورت اونجا نهی داره و طبعا هم نهی ثابت دیگه مشکل نهی نهی هست دیگه جوی اگر این طور شد دیگه به حدیث نمیذنین به اطلاق شعر صرف اول باید اثبات شود مثلا در ما نصيب با باب مثال روایت لباس فرعون لباس سیاه لباس فرعون اما اگر یا بکنید الحمدلله مؤقتشان لباس علی عباس لباس سیاه بود جاهایی هم که طلب نمی کنم از اجزایش خب پس علاوه لاتندش و ملابس عزاداری شامل لباس سیاه هم میشه در جان علی عباس نه اینکه لباس سیافی نفسه نه لباس باز پس باز قبلا حالا اگر فرض کنیم صابت هم شد یک لباس معینی ادهه هست یک خبقه باطل فرسون مثلا یا توسابه آمازون هم مثلا یک درس فرم باطله یک لباس معینی برمونتون گرفتن اثانی که مثلا با عنوان مثلا فرسون مورنان روشنگیزای زدیدینی هست یک لباس معینی کلا معینی بودشه این رو با عنوان خودشون ارث کردن با این کار مخصوصا فرض در روایت به که این کار نکنید این اومدن تعمدا این کار با خلاف در روایت انجام میدن مثلا در حالی که شین رو کجا بکنی سیمو بنای اینجا درست این واش شامل اما غیر از این دیگه اطلاق داشته باشه نه اگر این معنا درست شد پس ما باید قبل از حدیث بریم دنبال عنوان فطرت و عنوان حقیقیات و عنوان اینکه ثابت و ثابت نیست و ارز شد که در روایات ما در حنیفیت انصافا راجع به سمیل صادته روایات در حنیفیت در سمیل زیاده خیلی زیاده که کوتاه کردن سمیل کوتاه کردن سمیل جزا حنیفیته توی بعضی از روایات ما داره که خواهده جزء به در حنیفیته اصول همینه محل کلام ما لقیه هست روایات لقیه متفقون علیه نیست. اما روایات شارد متفقون علیه یکی یک میلیون خیلی زیاده این آیه فاضل موسوی هم در این کتابی دراسات ادیشه بحث شارد رو آورده آورده ما مطرح شارد نمی‌کنی چه چیزی سختش هم امثال شده ایشون اشاره روایات شارد متواتر حسابات خیلی زیاد تو تمام اونها ترتیب شده ولذا اگر تحقیق در افکار این سنت بیران برسد این هم ترکیب شده است. هم بیاس و ابراهیم بود و برد بوده و من نفهمم که یعنی رو سنت خودشون باشه یه گروه معینی بیان چمی گذاشن بعد خودشون قرار بوده. درست از این حدیث شاذ نشه فهمیدید شما این کارو نکنید. ولا شاذی روشن شد. اینه نمی‌شه. اما اگه شاذ نشه خود جزء حدیثی ثابت نشد که اون خودش روزه با این حدیث نمیشه به یک که از سوکه و آخر این حدیث البته ما باشیم از ظاهر حدیث که مهمه اوله که باقام بره همی داشته از چون در آخرش داره تکون و اعدائی کما هم اعدائی این تکون و اعدائی احتمالاً با مهمه دوم به نظر بهتر میسازه یعنی اونا هم الان ما مالون گفتن به فکرت من علم الفراست که چه بیزردن اینا اومدن این رو به عنوان یک شعار برای خودشون گرفتن و با این کار سعی کردن با متدینین و جامعه دینی فاصله پیدا بکنن منو میگم کارشان از گیرن اونجوری که کار مستعده الان واجی اندر اما این مقابل دین ایستادن شما هم یواشا همین کارو کردین مقابل دین میشین تکون و اعضای شما هم اعضای به نظر اما زیرش با معنای دوم بهتر میسازه صدرش با معنای اول بهتر میسازه انصافا اگر ما باشیم صدرش با معنای اول بهتر میسازه یعنی لباس خاص مسیحی یا مجمسی ها بودایی ها کنان نباشید ای این ظاهر اینطوره لیکن به که میرسیم انصافش معنای دوم که نصیبی باشه هر داشت باشه متقریر باشه به ذهن میاد که معنای دوم با ذهنی بهتر میزازه تکون و اعدایی کما کانه هم اعدایی میدیم تو فکر میکنم اون ذهن حدیث با معنای دومم انسجام بیشتری داره ولی ذهن همستا که به این حدیث درمان بسیار بخشونه چرا برای تدیر خوبه ها ها اگر فرض کنید یک طارقه منحردی سביל و بزرگ گذاشتن رمز به خودشون گرفتن انسان ای کار این کار منع این انصافا خوبه چون همین به ثابته اما ای فاعل ثابت نیست چون این معنا دوم باید اولا اثبات بشه که این به همین تا بعد اون باز وارد بشید برجسته معنای دوم اینجوری میشه اما برابر معنای اول نه اثباتی جز میخواستم یه نکته ظریف کشید حدیث ها از کنس نداره حالا با حال اون دوتا مهمت رو حدیثون اما این توی فکر کار بشابت یعنی توی جاید دیگه اما داریم توی فریو و غیر الله هم شبیه این گذشت که دین الله که تفسیر شده یعنی اول باز دین الله ثابت بشه این هم این حدیث از دفعه لازاله که حالا غیر از اون جایدی که گفتیم این حدیث اونی که در سر حدیث هللا هللا نبی من روشن نیست الله بنی این یهودیاتی که مال انبیاء خلف و ناس مال یهودیا و برمیگرده به بنی اسرائیل و به اون چند نفری که یا مسیحی بودن آخرش چهره معروف مسیحی که مسلمان شد یه کمیام معلومات داشته خبر و خبر رو خیلی بسیار اجوری طنیم داری طنیم عبدالله داری حزبندار در پیدا نمیاد اولی داره تو رو فشار میده شما جلو صحابه و اعلی و ناس شده و در اهل سنت هم یه چند م... هم چند نفری اون و سلمان چون سربلهوار هست اینا هم خیلی مؤثرا انصافهی مقدار زیاد اسرائیلی‌ها و حرفای عجیبایی در دنیای اسلام مال این دو نفر مال مسیح هایی در اسلام که عمرش همین ما به قدرت همین نریم خیلی هم مبلغ سفارش شد یه کم اطلاعات داشت قصای عجیب و حرفایی که اساسه مرغ جساتراونو نرم میکنه که حتی توی جزیره مروط کاملا میو بود آتو سونیامیان که این رساله پیرامبر، با توی منبر پنده که تنها مجازی است، ما فرندو بسی جدی کامی و شانه پیرامبرم اجلاجی بود نمرن تر به هر حال که از آحادیس و خالیت سلام همین هم نه، که من رفتم، ما لعنت به هر حال، راجع در من در جال یعنی در خواهد و راجع به استید در در و به هر حال، این ای ای این ریشه اون مجلس یهودیت و مسیحیت مخصوصاً مخصوصا حدیثی که اهل سننه را کردن در از این سندهش هم برد شاد نباشه حدس و انبنی اسرائیل ولا حرمش حبارت اینجوری هست نداره حالا اون محلا چیه قبلش چی بوده بعد چی بوده؟ شاید بیه مناسبه تو بعدی بحث و اصولی و متحرز اون حدیث شما مونتونی که دارا جا چما اینجوری برها شون آهل الله الله نویی من انبیایی معلوم نیست که این اصولا در این شریعت ما باشه و شاید در شرایطی بوده که کامل نبوده که مثلا این شما لباس رو مثلا دشمنان خدا هر لباسی که حرام میشه چون بعد شرایطی هم در از خصائصش نیست هم شرط خاطم هم کامله یعنی تمام حدود معین شده لباس معین شده مطاعم، مشارب تمام معنیم شده این برای شرایع سابق که یک کمی ابهام داره که عوض بشه این با او میخوره اما با این شریعت مقدسه تناسیبی نداره ازایی مشکلی حالا کارم به حساب اصابخ شرایع سابقه نداره لسانش لسانیه که قابل استحاب باشه یک مشکلی دیگه حدیث اوهالله فیلا نبی من انبیاری معروب نیست این حدیث مربوط به امت ما باشه و قابل تمسط به اطلاعش برای امت ما باشد خیلی مشکل تمسط که بونه هست اینم راجعه بگیم این حدیثم که یه هم دیگه در اینجا هست در نقطه ساله هست حالا وقت روزشتی من همین اکتفاهم بحث دلیل دیگری که باز در عبارات آمده عباراتی نهار کردن تشبه رجال به نسانه. چون روایت داره که تشبه نکن رجال به نساه و یکی نوع تشبره البته راجب اینجر یک عده از روایات داریم که زریفه. توحید هم ظریفه یکی در توحید مفرده که خواهی گره هستی نفتون چه شرح تاریخی خاص خودش داره که مثلا خداوند وقتی آدم خلقه در زینت آدم مثلا محاسم برونم داره به خدایی چیه گفتن تو و زن هست هم مثلا توی روایاتی که وارد شده در, در حکمت ریش و تمیز مرد از زن که چند ت این مضمون نیست که ریش نبودن علامت ذریعه و ریش گذاشتن مثلا علامت مردی هم فلسفه روی شریش رو در مرد نوشته نه اینکه که نوشته اگر مرد تاشیزن میشه تا چی به لرد اون بحث نمیخوره به لرد بحث ماندنگی نمیخوره به هر حال که سر خیلی کن هستیم چون خیلی زایی کسندم هنگام متعارضدیشه، فایمان میشه واس کنده شد توضیحش که خودش چه کنیم یه نوتویدیم و فردم و رم رو بگیش. چیله؟ از روایاتش به لحاظ سندی واضح نیستن اشکال معروفیم. هم مرحوم شیخ کرده دیگران کردن از قبل انداری که اصلاً کشابوه مرات تخلنسه. بازی تشبه زنها و ها، زنها. استراحت در لغت عربی مال زنها رو سخت می‌کنن مشاهده. آنی مردان که لباسشوازی نیگ نو هم جنس موزیه. که فهم مرا داره لباسش بره میاد. موزا فنر دستی که حتی سلامش نترن وی سندی که شما گیر داره یکی رو کلید حالا رواجاتش رو باید به شوهر قبول بکنیم می‌گویم لا گیر داره. و انصاف که عربیه حساس که بودن رواجات برای من این فیلم که در رواجات دیگه شده. بسیار بسیار مشکل بله میشه گفت که ممکنه خدایی نکرده جوانی این کار رو بکنه یعنی همزن میشی شده تره بشه و این که تره زن بشه و به اصطلاح موزی به هم جنسوازی مثلا این امکان داره در اونجا میشه انتظام به حرمت داد نه حالا عنوان حرق لحیه عنوان خود تشابه و بگیم چون این بحث رو من سابقا در اصول ارز کردم این بحث داره. میگن چون تشبه به حلق لحیه حاصل میشه پس حلق لحیه ارامه این همون بحث است که اکثر فرقش هم اجتماعه رو نهیه ما چرا این بحث رو به های مختلفی مفرح کردیم و از کردیم از زمان قدیم مطرحه. مثال های برساد دیگر غیر از بحث اجتماعه رو که در معروفه مثلا کسی نه کرد نماز شب بخونه در کتاب قربه که مثلا نماز واجب شیش تا که واجب به نظر اخره یا نگه نماز شب واجب میشه خب ایده هم شاید نماز محشین اوروا را عجیب شده استاد ما شون که شما قالب امتناع در حاشیه جدید شما شده عجیبشون در حاشیه جدیدشون حاشیه دادن ولی کسایی که قالب امتناع رو حاشیه گذاشن جاش اون کسی که قالب امتناع هست خیلیه ما اینکه درس ما یا سوم بود یا هشت بود بحث صلات نبود به یک مناسبتی در بحث همیشون متعدد درسته این مطابی درخوا شگیرشون ایشون می فهمنیه که نماز شد بخون نماز واجب نمیشه مستحب به عوض نمیشه این وجود پیدا نمیکنه. اونی که وجود پیدا نمی کنه وفا به نظره نه نماز شد هر کردن رو مبنای کسایی که قائل هستن به اجتماع خیلی راحته اما اون عنوانه واجب وجوب عفو بدن که قائل به امتناع ان تو قائل به اندکاک میشن یعنی میگن عنوانش یکی میشه پس نماز شب واجب میشه اگه اوردر مولاجهو فرمایید باشه الواجب به نظر میمشه به اده که قائل به امتناع دیگه اسم ببرن اون که قائل به امتناع اجتماع نذارن اونم به خاطر نماز شب مستحب میونه واجب نمیشه و قابل ترجیح نیست مولا این که مستحب این بحث دوانه داره دلیل بحث اینه تشبه مرد به زن حرام این تشبه با حلقله ای سوالم آیا حلق الهیه حرام میشه اگه فرض کن حلقله حرام میشه فرض که حلقله یا که فرض سرش بلند اگه مثل زلف جنها بزنه الان که موی سر بولا حرام موی سر که بلند کرد مثل زنها بزرگی مثل زنها مثل فرداد مواید سرش این موید سر زن کرد این که فی نفسه نیست تشبه کرد به زن تشبه به نساء کرد با این کار سوال اینه خود این کار حرام میشه یا نه خود این کار حرام نیشه تشبه همین حرامه بخوایم بخواهیم بروازه تشبه در ما نحنفی کنست کنیم کنیم مبدیز در اون نقطه حالا اون نقطه من به مثلا یاد سمشون اندکار یعنی شریه امتنا، که امتنایی هست. چون کسانی که امتنا هستن میگن نمیگه دو عنوان پیدا بکنه. میگن فیل فی نفسه جایز، مثلا همین فعل با معنای شبه حرام نمیشه. در نهایت میشیم نه حرامه و نه جایز. نمی تونه اما کسانی که قاهرا به اجتماع یعنی میگن فیل واحد. اصلا نه بحث در بحث اجتماع نه فعلی که واقعاً وحدانیسته، یعنی که ظاهراً. فقط دو تا هوش آیا دو صاحب دو هشیم کنه که باعث اجتماع بشه؟ یا دو صاحب اراده شیم کنه؟ لذا چه وادی ها باید شوم که این که باعث این تناسب، این تناسب یا میلیه که اجتماعیان دو ها، ولی واده هست است که دو تا واده داریم. یک واحد واده حکیمی انتظار نمیست، ولی چون ما مصدق نشده ایم انتظار شما مرا ما اصل انتظار خیلی از اعتباره. تلاششون خیلی فرضه نشده بله. نشود بابا. بله گیره ما. انتظار است که شما اونجا نشستین انتظار میشه اصلش سقف بالای سر شماست. و این زمین زیر پای شماست. ده تا انتظار مشکل انتظار مشکل نداره. الامر واضحه که انتظار مشکل نداره. انتظار مش اعتباره. این امر رو بگه دیگه بکن بی این عنوان نکن به این اونرتی. مشکل کیه؟ پس امام رو به با عنوان قرض نکن به عنوان ثواب بکن این مو کردن فی نفسه نکور بکن به شای نمیاد به عنوان تشبه نکون یک عمل گوهدانی واقعا گوهدانی این که شما طرز احضرت کردید یک عمل موهدانی فرض رحمت بود مجموعی مجموعه نماز بشه نه یک عمل موهدانی واقعا موهدانی مثل نشستان شما روی سندگی ببینیم نشستان شما روی سندگی بانوان استراحه جایه بانوان تدریس من همین همی خود عمل بودان این همه کلام در در اجتماع پس ما یا تدریس به اجتماع یا اون از این میشه نقطه فنیه فرقیش اینجاز هم اصولی همفنی فرقی اون نقطه اینه که اگر کسی با تلاشی در نبیش در تشباهه به زن بود یا در اینجا ببین تراشیدن حرام است یا ویژگی تراشیدن حکم خودشه داره تشبه حرام است این عمل به خودی فی نفسه حرام با همین عمل تشبهه به خود داره با عنوان به نساء حرام اما فی نفسه حلال اگر بشه حرام علای مباد تشبه به به رو انصافاً علا تقدیل این که مرادم مثلح ماشه به ما نحنفی نمیشه در چون خیلی آسانیش میشه در اونجای تشبه های بزن نداره هیش یک میترا که هیچ شبه های تشبه های بزن رو در ایش مید بر تشبه ها خطاً روزه انابین اگر اطلاقش ها قبول کنید اطلاقش ها قبول بخونید باز با ما نحنفی نمیسازه چون قطعاً قصده ها در موادی روشی میترایشه شواهر مقصد اگه دیشتر از توی شمیل کنوب بیان بگیر تشبه بزن برمه داره <تصفح> این طرح شدیه احتمال تشبه بزن بگیر پس این که ما بگیریم ریش شراشی مصابق باشی با تشبه این ها نیست حتی اگر تشبه مصلح میگیریم نه تخناس میگی. اون برز به همان انصافا تنسل که به روایات تشبه به در مانح بسیار بسیار مشکل این مجموعه عدلهی ای بود که این فاظر محاصر ما جنبه میدونم دفع که از آقای خوبی پنش در شماره که عدله که چندتان هست مختلفه همسا ما مجموعه عدله رو تشبه از موی قدیه اینطور باشی ممکن باشه ظاهرا فکر نمیتونه هر سلو بکنی حالا فرس که مثلا یک و لزوما بعضی ها بودن که فرض خیلی صورتشون زیبا بودن که گیر بکنن در این جا مثلا برقه می پوشه خود اون سری رو سرش اون زیبایی بوده جاد دیگه علی بودن اینطور بودن حالا نوشتن در تاریخ اسلام موجود به هر حال فکر کنم اونها باشه مجرد عمل سازجه فقط به میشه که توش زنگ فکر کنم باشه بدون خیلی اگر اطلاع رو مقبول که اطلاع باشه اگر اطلاع رو مقبول این مشکل این هم راجع به مسئله این این مجموعه عدلهی بود که در قرمت حرف شده از تر در در شماره شون کمو زیاد کرد. مجموعه عدله رو میشه تحریبات در عدلیش مختلف یک برگردیم خلاصه عدله رو که در دو تا قرم ده سیره ای که اجماع به نظ چون مثلا در کتوب قدینای ما مفرح نشده در کتوب خیلی متأخر ما که مفرح شده ادایه اجمال شده و کسانی که تقریبا از قرم دمون ببن متعرض شده هر کی متعرض شده قائل به حرمت شده این هست یعنی هر کی متعرض نشده اونه که متعرض شده هست قائل به حرمت شده خلاف نداره بله؟ خلاف نداره تا این محاصر نمایه که دیدی از این جدیدی ها بحثی کردن که و استقرار سیر همجه بحثیم قطعا خوبیم الانش هم خوبی. علانشان اینطوره الانش هم انصافاً اتقاض هم سیره یه متشبه قطعا هم در سیره حالا یا دو تا دلیل قرار بدیم یا چون اجماع شگه قدیه قدیمی با سیره تکیلش بکنیم حالا این دلیل هم قراره بله، فلسفه جدیدی هست که در این نه، نه که قصا چون ما با شمایه تاریخی یه روایتی از طبقه اهل سنت که یکی از صحابه می‌گه که ضمانتش می‌کنه و تهل قلبیه تک اصلا او اعتراض می‌کنه در تاریخی در صحابه از عبدالله مسعودی نظرش رو کوتاه می‌کنه اینقدر بی‌مطالبی که غیر بود که نویسنده صدر رحلیه حضرت که ظاهرا بالق تعرض شده یعنی اگر غیر متعارضی بود اصلا بین اونها که این حالا غیر از خود اونی یکی از ایشان میونه نفسو که ظاهرا کبدش بیشتره که نقله اشتباه بوده یا مثلا گردن حضرت کوتاه چون داره کانه تملا و صدر رحلیه حضرت به یکی که سینه حضر پر میکن. که از دو فرم کنه که ظاهرا که باعث به کبدش شده باشه یا مثلا گردن حضرت مثلا کوتاه بوده که از همون مثلا ایش خیلی خیلی عجیبه کنه حمله اصلا رو مبالغه دیگه مگر مبالغه باشه نه حالا به هر حال دقیقا این چیزی که باید داشته باشه که حالا فرض کنیم باید باشه که و خود ایش پیغمبر اکرم توسید شده ایشتون بزرگ بوده فقط یک روایت واحده اهل سنت ذره کان یخذو ملله یبی طولا در و, و الا این مقدار رو و اهل سالت هم چون روایت گیرده مایی که یعخوضا داره یعنی کوتاه کردن یه روایت داره که یعخوض من لحیتی کنه یع. ما مثلا برایت حسن زیاد که ظاهرش تحجب کرده که میگه بیشه چون حسن زیاد دارن یک سفر خدمت امان باغه رسیده تحجب کرده میگه در امان باغه دارن اینشون کتاه میکنن خفت لحیت هم یعنی تحجب کرده ک بعد روز دیگه رفتم خدمت حضرت ازم گفتن من تازه ازدواج کردم خانم گفتن امکان محاسبه ان کنم برای دیدی اینقدر مقاله امر غیر مصارف بوده که این مقدار کوتاهی کردن هم با خاطر که مثلا جدیده آدم شواهد شواهدی که جمع می‌کنم قطعاً درتبام داره یعنی هیچ در سیره و در اجماع هم اجماع فقهی هم به این معنی جای بحث نیست این جای بحث اصلاً در قدیم مطرح نشده چون شوف تو جامعه اسراف متعارف بوده کسی انجام نمیده کسی مثلا اگه از مثلا کفار یا از مجوسی یا ایده یک مقداری از, از مجوسی که انجام میدادن کسان میگن که ایرانی الاصل بودن زرتشتی بودن توی مناطقی زمینهای عراق کار میکردن تو اراضی ثواب اسلام اینا رسلا هم الوش این کارگرایی که توی زمین کار میکنن احتمالا یه مقدار که ایرانی بودن مثلا اینها ها محاسمشون و الله خود مشکین هم نمیتواشیدن فضل هم مسلمی این استقرار سیره سیره و مثلا این تعجب کرده که امام شام محاسم کوتاه کردن این کوتاه کردنه تحجیدن این برای این خیلی تحجباور بوده و بعد حالا توضیح بودن که این جریان این بود است و خونهی بوده خیلی خونه مثلا به زیور بعد از اون خونه مال خودش بوده مال زنم بوده اون با محل خودشین با پول خودش ساخته و آرائش کرده خونه حقیقی من اینه در از اون به حسن زریات هم که انسان نگاه میکنه که انما تو ارتکاز اینها مسلم بودی که کوتاه کردن چند شبه شبه داره خب بعد چون فتاوای اهل سنت از احده سهابر را که نگاه میکنی کاملا نشون میده بحث دینی بوده من در بحث روایات اخذ الهي از که در بحث اخذ الهي بیش املاز پیش اهل سنت ندازه اخذ دیگه کتکه نیست خلافه اخذ من الهي پیش اهل سنت حتافای صحابه و طاب صحابه از مثلا از عبدالله و عمر نه که اینکه یک قاضی یا رضازادی مثلا اصولا نه اخذ میکنه دزدی یک قبضی از بقیه صاحب هم هر نگرد. از خصوص هر ما آمد ما از کلیم برید نیست از امیر مومدون ثابت باشه از کتاب هربولستان صونیو از اون کتاب چی اسمشه اشعسی از کلیم که از دو سونیو و علیه نورتونی نصال نمزن مثل سونیو هم با از لحیه رو به اقمی رو موند ولی زیادی از احل ما در اصل لحیه توضیحاتی شدادیم. ادهی میگفتن شوش اعفاول لحیه آمده مطلقا جایز نیست. ادهی میگفتن این اعفاول ای لحیه از طرف این آرزه جایز مطلقا از مقدم لحیه جایز نیست. اصلا جایز نیست. که این ما روایت از موسیقی عبر داریم. مثلا روایت داریم کسا مطلقا جایز میز. ازینی می گفتن نه. از دو طرف میکنه از, از جلو به مغذاره لغی از قربزه اشکال نداره به مغذار قربزه ذر بر با Actually 가게 می نه میشه افت که کوتاه میکنه، نه که هر. مقیده به قبضه نیست جلو به قربزه یعنی جلو به مغذاره قربزه می تونه نگهت مزاره را بکنه یعنی اگر میخواد ببورد زاده برقرده در جلو بریش اما طرفی مصلقه میتونه کوتاه بکنه نهرم رو بکنه با نقل این اقوال از صحابه و تا به اینها روشن میشه اصل ممنوعیت حلق لهی مسلم بود جای بعضی ها بوده اصله اونی که من رحفت ده مسئله خفلی هست علایه آقایه مثله اجماع و سیده. اجماع همید. وقیه حجوم را فرداد از الله علیه محمد